و انجیل از بردباران و فقیران و مسکینان تعریف کرده است و همچنین از کسانی تعریف کرده است که مورد اذیت قرار میگیرند، اما در عوض مقابله نمی کنن. ولی قرآن تنها این را نمیگوید گوید که همیشه مسکین باشید و با شر مقابله نکنید بلکه میگوید گوید نرمدری، مسکنت، غربت و ترک مقابله خوب است اما اگر بی موقع باشد بد است بنابراین نیکی را با تشخیص زمان و مکان مناسب انجام دهید چون آن رفتار نیکو که در زمان نامناسبی صورت گیرد همانا عین بدی است همانطور که می‌دانید، باران تا چه میزان عالی و ضروری است اما اگر در زمان نامناسب ببارد تباهی به بار می و می‌دانید که اگر یک غذایی با طبع سرد یا گم را به طور مداوم بخورید سلامتی خود را از دست می دهید. بلکه زمانی سالم خواهید ماند که مطابق با مکان و زمان غذاهای خود را تغییر دهید. پس درشتی و نرمی و اف و انتقام و دعا و نفرین و اخلاق دیگر نیز بر بروقف مسلحت وقت تبدیلی مناسب را اقتضا می کند. بسیار حلیم و خوشخلق باشید، اما نه محل و بی موقع. و این نکته را هم به خاطر داشته باشید اخلاق فاضله حقیقی که نیت نفسانی در آن نباشد از بالا به وسیله روح القدس می بنابراین تا زمانی که از بالا آن خلقیات انایت نشود نمی توانید این اخلاق فاضله را صرفا با تلاش و کوشش خودتان به دست آورید. آن کسی که از فیض آسمان به وسیله ی روح القدس بخشی از اخلاق را نمیابد در ادعای اخلاق دروگوست و زیر آبش گل و فضولات است که در هنگام به جوش آمدن نفسش ظاهر می شود. بنابراین شما همواره از خداوند قوت و توانایی بخواهید تا از آن گل و فضولات نجات یابید و روح القدس تهارت و لطاوت واقعی را در شما ایجاد کند. به خاطر داشته باشید که اخلاق واقعی و پاک معجزه درستکاران است که هیچ کسی در آن شریک نیست. زیرا کسانی که در خدا محو و گم نمی‌شوند، آنها از بالا قدرت داده نمی شوند و به همین خاطر ممکن نیست که اخلاق پاک را برگزینند. پس با خدای خود ارتباط مستقیم داشته باشید و قهقهه و مسخره کردن و کین و دوزی و فوش دادن و هرس و تمه و دروغ و زنا و چشم چرانی، بدبینی، دنیا پرستی، تکبر، غرور، خودخواهی، شرارت و کجندیشی همه را رها کنید پس از آن تمام اخلاق فاضله از آسمان به شما داده خواهد شد و مادامی که قدرتی شما را به سمت بالا نکشد و شامل حالتان نشود و روح که زندگی میبخشد در وجودتان داخل نشود تا آن موقع بسیار ضعیف و در تاریکی هستید بلکه مرده هستید که جان ندارد در این وضعیت نمیتوانید با هیچ مصیبتی مقابله کنید و همچنین نمیتوانید در زمان اقبال و ثربتمندی از کبر و غرور نجات پیدا کنید از هر جهت مغلوب شیطان و نفس خود خواهید بود پس تنها درمانتان این است که روح القدسی که به طور ویژه از جانب خدا میاید، چهره چهرهتان را به سمت نیکی و درستکاری برگرداند. شما فرزندان آسمان باشید، نه فرزندان زمین. وارث روشنایی شوید، نه عاشق تاریکی، تا از مسیرهای شیطان در امان بمانید. چرا که شیطان همیشه با شب سر و کار دارد و با روز هیچ رابطه ای ندارد. او دزدی قدیمی است که در تاریکی گام برمیدارد سوره فاتحه فقط مشتمل بر تعالیم نیست بلکه یک پیشگویی بزرگ نیز در بر دارد و آن اینکه خداوند متعال با ذکر چهار صفت خود ربوبیت، رحمانیت، رحمیت و مالکیت یامدین یعنی اقتدار جزا و سزا و قدرت عام خود را نشان داده است و سپس در آیه های بعدی این دعا را آموزش داده است که خدایا، چنین کن که ما وارث پیامبران و درستکاران پیشین شویم و راه آنها را برای ما باز بفرما. نعمت‌های آنان را به ما بده. خدایا، ما را از آن نجات بده که در زمره قومی قرار بگیریم که بر آنها در دنیا عذاب تو نازل شد. منظور ملت یهود است که در زمان حضرت عیسی مسیح با تا اون نابود شدند. خدایا ما را مصنون بهدار از آن قومی شمرده شویم که راهنمایی تو شامل حالشان نشد و گمراه گشتند یعنی مسیحیان در این دعا این پیشگوی نهفته است که از مسلمانان بعضی افراد این گونه خواهند بود که به دلیل صدق و وفای خود وارث پیامبران گذشته میشوند و به آنها نعمتهای نبوت و رسالت داده خواهد شد و بعضی این گونه خواهند بود که همانند یهودیان میشوند که در همین دنیا بر آنها عذاب نازل خواهد شد و بعضی این گونه خواهند بود که جامعه مسیحیت را خواهند پوشید چون در کلام خدا این سنت مستمر و دایم وجود دارد که وقتی قومی از کاری باز داشته می حتما ادهی در علم خدا هستند که مرتکب آن می و بعضی هم هستند که نیکی و سعادت را به دست می آبرند. از ابتدای دنیا تا آخر در هر کتابی که خداوند فرستاده است این سنت قدیمی وجود داشته است که وقتی او قومی را از کاری من می کند یا به انجام کاری ترقیب می نماید در علم او مقدر است که بعضی آن کار را انجام خواهند داد و بعضی دیگر خیر پس این سوره پیشگویی می کند که فردی از این امت به طور کامل همچون انبیا ظهور می کند تا آن پیشگویی که از آیه سراتاللزین انمتا علیهم استنباد می شوند، به طور تمام و کمال تحقق یابد و گروهی از بین آنها به یهود ظهور مییابند که حضرت عیسی لعنتشان کرده بود و به عذاب الهی مبتلا شده بودند تا آن پیشگویی که از آیه غیر مخضوع علیهم استنباد می شود محقق شود و گروهی از بین آنها به رنگ مسیحیان ظاهر می شوند، یعنی مسیحی می شوند. مسیحیان کسانی هستند که به خاطر شرابخوری و فساد و فسخ و فجور از رهنمودهای خداوند متعال به نصیب ماندند تا آن پیشگویی که از آیه ولذالین مستفاد می‌شود ظهور یابد و چون این عقیده در میان مسلمانان وجود دارد که در آخر زمان هزاران مسلمان یهودی صفت می‌شوند و در چندین جای قرآن نیز این پیشگویی موجود است و مسیحی شدن صدها مسلمان یا پیش کردن زندگی بار مثل مسیحیان توسط مسلمین امری مشهود و ملموس است و بلکه بسیاری هستند که خود را مسلمان می خوانند اما شیوه معاشرت مسیحیان را می پسندند و در حالی که مسلمان هستند با نفرت به نماز و روزه و احکام حلال و حرام می هر دوی این فرقه ها یعنی یهودی صفت و مسیحی صفت در این کشور گسترش یافتند. پس تحقق این دو پیشگویی را مشاهده کرده اید و به چشم خود دیده اید که چقدر از مسلمانان یهودی صفتند و چقدر جامعه مسیحی را به تن کرده اند. بر این اساس اکنون سومین پیشگویی به طور خود به خود در خور پذیرش است. چنان که مسلمانان با یهودی و مسیحی شدن بدیهای آنان را کسب کردن پس حق است که بعضی از افراد مسلمان به مقام و مرتبه افراد مقدس بنی اسرائیل نیز برسند. این بدگمانی به خداست اگر فکر کنیم او مسلمانان را در بدیهای یهود و مسیحیان تا این حد سهم ساخته است که نام یهود را نیز بر نهاده است اما هیچ سهمی از مراتب پیامبران و رسولانشان را به این امت نداده است در این صورت این امت چطور بهترین امت قرار گرفته است بلکه باید بدترین امت باشد که هر نمونه شر و بدی را از گذشتگان اخذ کرده اما هیچ نمونه نیکی و خیر را دریافت نکرده است آیا لازم نیست که در این امت هم کسی به پیامبران و رسولان باشد که وارث تمام پیامبران بنی اسرائیل و سایه آنان باشد؟ چرا که از رحمت خدا بعیده است؟ که در این امت در این زمانه هزاران نفر یهودی صفت را به وجود آورد و هزاران نفر را مسیحی گرداند اما هیچ شخصی را ظاهر نکند که وارث انبیای گذشته و صاحب نعمت‌هایشان باشد تا آن پیشگویی که از آیه اهدنا الصراط المستقیم الذين انعمت عليهم استنباط می‌شود نیست همان گونه تحقق یابد که پیشگویی مبنی بر یهودی و مسیحی شدن مسلمین محقق شده و در اثر آن هزاران نام بعد به این امت نسبت داده شده است از قرآن کریم و احادیث ثابت می شود که یهودی شدن نیز نصیب مسلمین است. در این صورت، فضل خداوند متعال اقتضا می کرد که همانطور که آنها بدیهای مسیحیان را اخذ نموده اند، باید وارث خوبیهایشان نیز باشند. به همین خاطر، خداوند متعال لرآیه اهده ای نستراتر مستقیم بشارت داده است که در این امت نیز افرادی نعمت‌های پیامبران گذشته را به دست می‌آورند و اینگونه گونه نیست که مسلمانان تنها یهودی و یا مسیحی شوند و تنها بدیهای این اقوام را پیشه می می‌کنند و نیکی‌هایشان را پیشه نمی نمی‌کنند به همین نکته در سوره تحریم نیز اشاره شده است که درباره ی بعضی افراد امت گفته شد که آنها شبیه مریم صدیقه خواهند بود که پارسایی را انتخاب کرد و در نتیجه روح عیسی در رحمش دمیده شد. و از شکم او عیسی به دنیا آمد. در این آیه به این امر نیز اشاره شده بود که در این امم شخصی خواهد بود که ابتدا به مرتبه مریم میرسد، سپس روح عیسی در او دمیده می‌شود و آن وقت عیسی ابن مریم به وجود خواهد آمد. یعنی وی از صفات مریمی به صفات عیسیی ترقی می‌یابد. گوی صفت مریمی صفت عیسیی را به وجود می‌آورد و این گونه وی ابن مریم خوانده می‌شود. چنانچه در براهین احمدی در ابتدا نامم مریم نهاده شد و در الهام صفحه دویستو چهل و به همین موضوع اشاره شده که این لکه هزه یعنی ای مریم تو این نعمت را از کجا به دست آوردی؟ و به همین موضوع در صفحه دویستو بیستو اشاره شده است در وحی هز الیک که به جزه نخله یعنی ای مریم تنه درخت درخت خورمارا تکان بده و پس از آن در صفحه 496 براهین احمدیه این الهام وجود دارد که یه مریم از کننده و زوج کل جنه نفخت امین لدونی روح صدق یعنی ای مریم تو همراه با دوستانت داخل بهشت شو من از خودم روح صدق را در تو دمیدم خداوند متعال در این آیه نام مرا روح القدس نهاد. ناشه در رابطه با در این آیه در پاورقی ورقی در اینجا منظور از آیه الهام است. چنان که چند سطر قبل خود حضرت مسیح موعود علیه سلام آن را الهام قرار دادند. ادامه مطلب. و این الهام در مقابل آیه نفخنا نفیهی من روحنا است. سوره تحریم آیه سیزده مترجم ترجمه را این گونه نوشته ما در او روح خود را دمیدیم ادامه مطلب در اینجا گویی در کلام استعاره گفته شده است که روح عیسی در شکم مریم دمیده شد که نامش روح صدق است سپس در پایان در صفحه 556 براهین احمدیه در مورد به دنیا آمدن ایسایی که در شکم مریم بود اینگونه گونه الهام شد يا عيسى اني متوفيك ارفعك الى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه مترجم ترجمه را این گونه نوشته ای عیسی به یقین من به تو وفات می‌دهم و مقامت را نزد خود بالا می‌برم و کسانی را که از تو پیروی می‌کنند بر کسانی که کفر می‌ورزند تا روز قیامت غلبه می‌دهم ادامه مطلب در اینجا نام من ایسا نهاده شده است از این وحی معلوم می شود که آن ایسا متوله شده است که در مورد نفخ روحش در صفحه 496 سخن به میان آمده بود پس من از این لحاظ ایسابن مریم خانده شدم چرا که درجه ایسابی من از درجه مریمی با نفخ خداوند به وجود آمد مراجعه کنید به صفحه 496 و 556 براهین احمدیه همین رویداد در سوره تحریم به عنوان پیشگویی در کمال سراحت بیان شده است که در این اومت ایسابن مریم این گونه به دنیا خواهد آمد که در ابتدا خدا فردی از این اومت را مریم خواهد ساخت و سپس در آن مریم روح عیسی را خواهد دمید سپس آن فرد بعد از مدتی پرورش یافتن در رحم مریمی با روحانیت عیسی متولد خواهد شد و اینگونه گونه وی ایسابن مریم خوانده خواهد شد. این خبر در مورد ابن مریم محمدی است که در قرآن کریم یعنی در سوره تحریم 1300 سال پیش بیان شده بود و سپس خداوند متعال در براهین احمدیه خودش این آیات سوره تحریم را تفسیر نمود. قرآن شریف موجود است. از یک طرف قرآن کریم را در نظر بگیرید و از طرف دیگر براهین احمدیه را سپس با عقل و انصاف و تقوا تفکر کنید که آن پیشگویی که در سوره تحریم بیان شده بود یعنی در امت فردی مریم نامیده می شود و سپس از مریم عیسی ساخته می شود گویی از شکم او به دنیا می آید چگونه با الهامات براهین احمدی محقق شده است آیا این از قدرت انسان است آیا من اختیار این را داشتم و آیا من در آن زمان وجود داشتم وقتی قرآن شریف در حال لزول بود تا من در درگاه خدا عرض می کردم که برای ابن مریم قرار دادن من آیه ای نازل کند و من را از این اعتراض رها سازد که چرا تو باید ابن مریم خوانده شوی و آیا من بیست بیست و دو سال پیش یا حتی بیشتر از آن می توانستم این نقشه را بکشم که از طرف خود الهام دروغین به و اول بر خود نام مریم بنهم و سپس از روی افترا این الهام بسازم که مثل مریم زمان گذشته در من نیز روح عیسی دمیده شده و سرانجام در صفحه 556 براهین احمدیه بنویسم که حال من از مریم به عیسی تبدیل شدم ای عزیزان دقت کنید و از خدا بترسید این هرگز کار انسان نیست این حکمت های زریف و دقیق بالاتر از فهم و قیاس انسان است اگر در هنگام تعلیف براهین احمدیه که زمان زیادی بر آن گذشته است چنین نقشه در سر می داشتم در آن صورت چرا باید در همان کتاب براهین احمدیه این مطلب را نیز می که ای سبن مریم از آسمان دوباره خواهد آمد اما چون خدا میدانست که با آگاه بودن به این نکته، این دلیل بالا ضعیف و سست خواهد شد، بنابراین او در جزء سوم کتاب براهین احمدیه بر من مریم نام نهاد. سپس، آنطور که از کتاب نام برده معلوم است، من دو سال در صفت مریمی پرورش یافتم و در خفا و پرده رشد کردم، و هنگامی که بر آن دو سال گذشت، آنگاه همان همانگونه که در صفحه 496 جزء چهارم کتاب براهین احمدی مستور است، مانند مریم روح عیسی در مندمیده شد. و در زبان استعاره باردار قرار داده شدم و سپس از چندین ماه که بیشتر از ده ماه نیست، به وسیله آخرین الهامی که در صفحه 556 جزء چهارم کتاب براهین احمدی درد شده است، از مریم عیسی ساخته شدم. و این طور من ابن مریم قرار یافتم و خداوند متعال در زمان براهین احمدیه مرا از این سر مخفی با خبر نساخت در حالی که تمام آن وحی خدا که شامل این راز بود بر من نازل شده بود و در براهین احمدیه مستور گشته بود اما خدا به من هیچ اطلاعی از مفهوم و ترتیب آن نداد به همین خاطر من عقیده رسمی و سنتی مسلمانان را در براہین احمدی نوشتم تا شاهدی بر سادگی من و ساختگی نبودن وحی باشد. نوشتن این عقیده رسمی از روی الهام نبود بلکه تنها از روی رسم و سنت بود. لذا آن نمی‌تواند برای مخالفان علیه من قابل استناد باشد چرا که من ادعای آگاه بودن به غیب ندارم. من تنها به آن امر غیبی اطلاع دارم که خداوند خودش درباره آن به من خبر میدهد و تفهیم می می‌نماید. به علاوه، تا آن زمان حکمت الهی همین اقتضا کرد که بعضی اسرار الهامی برای این احمدی رو متوجه نشوم. اما هنگامی که زمان درک آنها فرا رسید، خداوند متعال آنها را به من تفهیم نمود و آنگاه متوجه شدم که ادعای مسیح موعود بودن من هیچ چیز جدیدی نیست. این همان ادعایی است که بارها در براهین احمدیه به سراحت نوشته بودم. در اینجا الهام دیگری را هم ذکر می کنم به خاطر ندارم که آیا این الهام را در مجله و یا آگاهی به چاپ رساندم یا خیر، اما یادم هست که آن را برای صدها نفر تعریف کردم و در دفتر یادداشت الهامات هم نوشتم. این الهام متعلق به زمانی است که خداوند هنوز تازه مرا لقب مریم داده بود. و سپس درباره دمیده شدن روح هم الهام نموده بود پس از آن این وحی شد فاجاء فا اهل مخاذه الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مدت قبل هذا و كنت نسيا منسيه یعنی درد زایمان مریم را که مراد از مریم این عاجزه است به سمت درخت خرما کشاند یعنی با عوام و ناس و جاهلان و علمای نادان برخورد کردم که میوه ایمان را نداشتند و مرا کافر خواندند و اهانت نمودند و فحش دادند و طوفان به پا کردند آن زمان مریم گفت که کاش من قبل از این مرده بودم و نام و نشانی از من باقی نمی ماند. این الهام به ققای اشاره دارد که در ابتدا آخوندها به طور مجموعی علیه من برپا کردند و نتوانسان این ادعای من را تحمل کنند و با هر حیله‌ای خواستند مرا نابود کنند. خداوند متعال در این الهام تصویر رنج و استرابی را که با دیدن غقای نادان در دل من ایجاد شد کشیده است و در این راستا الهام های دیگری نیز بودند، چنانکه که این الهام لقد جئت انفریه فريا ما كان ابوك امرا و وما اون که بقیه و همراه آن این الهام در صفحه 561 براهین احمدیه مکتوب است الیس الله بکاف عبده ولنجع علی للناس ورحمه منا وكان امرا مخزیا قول الحق الذي رجوع کنید به صفحه 516 سطر 12 و 13 براهین احمدیه ترجمه و مردم گفتن ای مریم تو چه کار زشت و قبیهی کرده ای که از راستی به دور است پدر و مادرت که این گونه نبودند مؤلف شریف در رابطه با پدر در پاورقی میفرماید از این الهام یادم آمد که در بتاله فردی از سادات به نام فصلشا یا مرشاد بود که پدرم را بسیار دوست می داشت و با او رابطه ی نزدیکی داشت زمانی که احدی به وی خبر از ادعای مسیح بودن من داد بسیار گریست و گفت پدرش که بسیار آدم خوبی بود، یعنی این مرد به چه کسی رفته است؟ پدرش که مردی خوشخورق و دور از کارهای افتراه و انسانی راستگو و مسلمان پاک دلی بود. همینطور بسیاری از افراد دیگر نیست این مطلب را گفتند که تو با ادعای خود خاندانت را لکهدار کرده ای ادامه مطلب اما خداوند از این تهمت ها بندهش را پاک می و ما او را برای مردم آیت و نشانه و از اول مقدر بود که این اتفاق بیفتد این عیسی ابن مریم است که مردم درباره آن شک میکنند. همین حرف حق است تمام این عبارت از کتاب براهین احمدی است و این الهام در حقیقت آیت قرآنی است که در مورد حضرت عیسی و مادرش میباشد در این آیات خداوند در مورد همان عیسی که مردم او را زاده ی روابط نادرست قرار میدهند میفرماید که ما او را از نشانه های خیش قرار خواهیم داد و این همان عیسی است که انتظارش را میکشیدند و در عبارات الهامی منظور از مریم و عیسی من هستم در مورد من گفته شده که ما او را نشانهای قرار خواهیم داد و همچنین گفته شد این همان عیسی ابن است که قرار بود بیاید و مردم دارند درباره او شک میکنند حق همین است و کسی که باید می آمده و شک فقط از روی نفهمی است کسانی که اسرار را نمی فهمند و ظاهر پرستن حقیقت را نگاه نمی کنند و این نکته را نیز به خاطر بسپارید که از اهداف عظیم شان سوره فاتحه این دعا است که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انمت عليهم در دعای انجیل نان کفا خواسته شده اما در این تمام آن نعمتهایی خواسته شده اند که به پیامران قبلی عطا شده بودند. مقایسه این دو دعا نیز در خور توجه است. چنانکه در اثر استجابت دعای حضرت عیسی برای مسیحیان مقدار زیادی از اسباب خوراک محیا شد، همینطور با استجابت این دعای قرآنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانان نیکوکار و ابرار و به خصوص افراد کاملشان وارث انبیاء بنی اسرائیل قرار داده شدند. و در حقیقت ظهور کردن مسیح معود از همین امت نیست نتیجه استجابت همین دعاست. چرا که اگرچه بسیاری از نیکوکاران در خفا شباهتهایی به انبیای بنی اسرائیل داشتن اما مسیح این اومد به حکم و ازن خدا کاملا آشکارا در مقابل مسیح اسرائیلی فرستاده شد تا شباهتی بین سلسله موسوی و سلسله محمدی قابل گردد به همین دلیل این مسیح را به لحاظ هر جنبه و بود به ابن مریم تشبیه داده شده است تا این حد که حتی مشکلات و مصایب هم بر این ابن مریم شبیه مشکلات و مصایب آن ابن مریم اسرائیلی آمدند. شباهت اول این است که همونطور که عیسی ابن مریم تنها با نفخ خدا به دنیا آمد این مسیح نیز مطابق وعده خدا که در سوره تحریم مستور است تنها با نفخ خدا از شکم مریم به دنیا ورده شد و همانطور که با تولد عیسی ابن مریم آشوبی بپا شد و مخالفان کورکورانه به مریم گفتن لقد جئتشه انفریه. سوره مریم آیه 22 همینطور در اینجا هم گفتند و قیامتی بپا کردن. و همونطور که خداوند در زمان بارداری مریم اسرائیلی به مخالفان در مورد ایسا این پاسخ داد که وَلِنَ جَعَلَهُ عَيَةٌ ورحمت وَرَحْمَتَمْ و وَكَنَ امرا مَقْضِيهِ سوره مریم آیه 22 وی ای همین پاسخ را در براهین احمدیه زمانی که من از لحاظ استعاره باردار بودم به مخالفان من نیز داد و گفت که شما با حیله هایتان نمی توانید او را نابود کنید من او را برای مردم به عنوان نشانه رحمت خواهم فرستاد و از اول مقدر شده بود که اینطور روی دهد سپس چنان که علمای یهود علیه حضرت عیسی علیه السلام فتواهای کفر صادر کردند و اول یک یهودی فاضل شرور فتوا آماده کرد و سپس فاضلان دیگر هم بر آن فتوا دادند وسطا عالم و, و فاضل بیت المقدس که از اهل حدیث بودند مهر تایید بر کفر حضرت عیسی علیه السلام زدند مؤلف شریف در پاورقی می‌فرماید اگرچه در زمان حضرت عیسی فرقه های زیادی از یهود وجود داشتند اما فرقه هایی که برحق پنداشته می داشته دو بودند یک گروهی که به تورات پایبند بودند و از آن با اجتهاد خود مسائل را می میکردند. دو فرقه دوم اهل حدیث بودند که احادیث را بر تورات قاضی و داور میدانستند. اهل حدیث در بلاد اسرائیلی بسیار گسترش یافته بودند و به احادیث هم عمل می که غالبا تورات را نقص می و برای آن برهانی که می آوردن این بود که بعضی از مسائل شهر مثل عبادات و معاملات و قانون مجازات با مسائل تورات هم ندارد و از طریق احادیث و آنها مطلع می شویم. نام کتاب حدیثشان تالمود بود و در آن حدیث های دوران هر پیامری بود این احادیث تا مدتها فقط در حافظه مردم بود و بعدن به نگارش درآمد و به این علت بعضی از احادیث موضوع هم نوشته شده بود و در نتیجه آن در آن زمان یهود به هفت و دو سه فرق تقسیم شده بودند و هر فرقه حدیث‌های جداگانه‌ای برای خود داشت و فقیهان و محدثان دیگر هیچ توجهی به تورات نداشتند اکثرا به هدیث عمل می‌کردند و گویا تورات متروک و محجور شده بود اگر حکم تورات مطابق حدیث باشد میپذیرفتند در غیر این صورت آن را رد میکردند. حضرت عیسی علیه السلام در این دوران به دنیا آمد و مخاطب خاص او اهل حدیث بودند کسانی که به حدیث بیشتر از تورات عزت و احترام نهادند و در نوشته های پیامبران قبلی این خبر داده شده بود که وقتی یهود به فرقه های متعدد تقسیم شوند و کتاب خدا را رها کنند و به احادیث روی بیاورند آن موقع حکم و عدلی از سوی خدا فرستاده می شود که مسیح نام دارد و آنها او را قبول نخواهند کرد و سرانجام عذاب سختی بر آنها نازل خواهد شد و آن عذاب تا اون بود نعوذ بالله. ادامه مطلب همین اتفاق برای من نیز افتاد و چنان که حضرت عیسی علیه السلام پس از تکفیر بی نهایت اذیت و آزار داده شد و مورد صبح سوبشات قرار گرفت و در حج و بدگوییش اش کتاب ها نگاشته شد همین صورت در اینجا با من نیز رخ داد گویا پس از 1800 سال همان عیسی دوباره به دنیا آمده و همان یهود دوباره به دنیا آمدند آه معنی پیشگویی غیر مغزوب علیهم همین بود که خداوند از قبل تفهیم نموده بود اما این مردم صبر نکردند و مانند یهود مقصوب علیهم گشتند اولین خشت این شباهت را خداوند متعال خودش گذاشت و مرا دقیقا در قرن چهاردهم به عنوان مسیح اسلام فرستاد چنان که عیسی ابن مریم را در قرن چهاردهم فرستاده بود و نشانه های قدرتمند خود را دارد به خاطر من نشان می‌دهد و در زیر آسمان هیچ مخالف مسلمان یا مسیحی یا یهودی و غیره توانایی مقابله با آنها را ندارد و چگونه انسان عاجز و ذلیل می تواند با خدا مقابله کند این خشت اول است که خدا خودش نهاده است و هر کسی که بخواهد آن را بشکند نخواهد توانست اما وقتی که این خش بر سرش بیفتد او را تکه تکه خواهد کرد چون این خشت خشت خدا و دست دست خدا است و خشت دوم شباهت را مخالفانم ام آماده کردند و در مقابل آن گذاشتن آنان علیه من کارهایی کردند که در زمان حضرت مسیح یهود انجام داده بودند تا این حد که برای از بین بردن من در دادگاه علیه من پرونده قد تشکیل دادن اما خداوند متعال از قبل مرا از آن با خبر ساخت پروندهی که علیه من درست کرده بودند، بسیار سختتر از آن پروندهی بود که یهود علیه حضرت ایسابن مریان ساخته بودند. چرا که اساس پروندهی حضرت عیسی فقط مبنی بر اختلاف مذهبی بود که نزد قاضی ارزش زیادی نداشت بلکه اصلا چیز مهمی نبود اما فرونده ای که علیه من درست کرده بودند. مبتنی بر ادعای قتل بود و همانطور که در دادگاه حضرت عیسی فقیهان یهودی علیه ایشان شهادت دادند، همین گونه ضروری بود که در این دادگاه من نیست یکی از ها بیاید و علیه من شهادت بدهد به این خاطر خداوند متعال برای این کار مولوی محمد حسین بطالوی را برگزید و او با پوشیدن جبه بلند برای شهادت دادن در دادگاه آمد و همانطور که سردار کاهن برای شهادت دادن علیه حضرت مسیح ابن مریم به دادگاه آمد تا بتواند ایشان را رو روی صلیب بکشاند همینطور این مولوی نیز در دادگاه آمد اما تفاوتش با کاهن مسیحی این بود که در دادگاه بیلاتوس به وی صندلی برای نشستن داده شد چرا به افراد بزرگ و محترم یهود دولت روم صندلی می‌داد و بعضی از آنان قاضی افتخاری نیز بودند به این دلیل به آن سردار کاهن مطابق قواعد و قوانین کشور صندلی داده شد و مسیح ابن مریم انسان مجرم در دادگاه ایستادند اما در دادگاه من عکس این به عمل آمد یعنی کاپیتان داگلس که به جای پیلاتوس بود برخلاف امید و انتظار دشمنانم مرا در دادگاه روی صندلی نشاند است که این پیراتوس نسبت به پیلاتوس مسیح ابن مریم انسان با اخلاق تری ثابت شد چرا که وی در امور دادگاهی با شجاعت و استقامت عدالت را رعایت کرد و به سفارشای بالادستان در اتاق دادگاه هیچ اعتناعی نکرد و فکر ملی و مذهبی نیز هیچ تغییری در او ایجاد نکرد و چنان الگویی از خودش در پیش کردن ادالت نشان داد که اگر بگوییم او افتخار ملت و برای قاضیهای دیگر الگوست بی جا نگفته‌ای رعایت ادالت امری سخت است تا زمانی که انسان قبل از نشستن بر صندلی دادگاه تمام پیون و علایق خود را قطع نکند نمیتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد اما ما این شهادت راستین می دهیم که این پیلاتوس به وظیفه اش خیلی خوب عمل کرد. اگرچه پیلاتوس زمان حضرت مسیحی که رومی بود نتوانست وظیفه خود را ادا کند و در اثر بزدلی اش حضرت مسیح دستخوش رنج و آزارهای بسیار دردناکی گشت. مادامی که دنیا برقرار است این تفاوت در جماعت ما در خور ذکر خواهد بود و با افزایش تعداد این جماعت به میلیون‌ها نفر ذکر خیر این حاکم خیرخواه هم ادامه خواهد داشت. و این سعادتفندی اوست که خداوند متعال او را برای این کار برگزید. برای قاضی چقدر این موقعیت و آزمایش سختی است که طرفین نزدش میآیند. یکی از طرفین این دینی است و طرف دیگر مخالف مذهبش. طرف همکیش برای قاضی تعریف می کند که طرف مقابل مخالف شدید دین است اما پیلاتوس شجا با کمال استقلال و بدون هیچ تبعیضی این امتحان را پشت سر میگذارد در حالی که به وی آن بیانیه ها از کتب نشان داده میشوند که در آن در مورد مذهب مسیحی از روی نادانی و نفهمی کلمات تندی برداشت میشد و اینگونه سعی کرده بودند که وی را علیه من تحریک کنند اما با وجود آن در او هیچ تغییری روی نداد که وی با بصیرت خود متوجه حقیقت شده بود و چون وی با صدق دل واقعیت پرونده را جسته بود لذا خداوند متعال به او کمک کرد و صداقت را بر دلش الهام نمود و برایش حقیقت را آشکار ساخت و وی از این امر بسیار خوشحال شد که راه عدل را پیدا کرده است او فقط بر اساس ادله ادالت مرا در مقابل مدعی صندلی داد و هنگامی که مولوی محمد حسین بطالوی که مانند سردار کاهن برای شهادت علیه من آمده بود دید که من روی صندلی نشسته ام و مطابق توقف و انتظارش ذلت و خوار را نتوانست ببیند آنگاه وی مسئله مساوات و برابری را غنیمت شمرده و از پیلاتوس خواست که به وی نیز سندلی داده شود اما پیلاتوس وی را سرزنش کرد و گفت که به تو و پدرت هیچگاه در دادگاه صندلی داده نشده است و در دفتر هم هیچ دستوری داده نشده است که به تو صندلی داده شود حال این تفاوت نیست قابل توجه است که پیلاتوس قبلی از ترس یهود به بعضی از شاهدان محترم آنها صندلی داد و به حضرت عیسی علیه السلام که به عنوان مجرم در دادگاه آورده شده بودند هیچ صندلی نداد و ایستاده گذاشت در حالی که او با صدق دل خیرخواه حضرت عیسی علیه السلام بود بلکه مانند مریدانشان بود و همسر او از پیروان خاص حضرت عیسی علیه السلام بود و ولی الله خوانده می شد. اما ترس باعث شد که وی چنین کاری را انجام دهد که حضرت مسیح علیه سلام بیگناه را به ناحق به یهود تحویل دهد. با اینکه در آن زمان بسان من پرونده در کار نبود فقط اختلاف معمولی مذهبی بود اما آن پیلاتوس رومی دل قوی و شجایی نداشت. بنابراین وی پس از شنیدن این حرف ترسید که علیه او به قیصر شکایت بکنن. شباهتی دیگر نیز بین این پیلاتوس و پیلاتوس قبلی در خور یادآوری است و آن اینکه هنگامی که حضرت مسیح ابن مریم در دادگاه آورده شدند پیلاتوس قبلی به یهود گفت که من هیچ گناهی در این شخص نمی بینم و همینطور زمانی که مسیح دوم در مقابل پیلاتوس دوم حاضر گردید و گفت که چون به من اتهام قطع زده می شود لذا برای پاسخ آن به من مهلت چند روز داده شود آن زمان پیلاتوس دوم هم گفت که من به شما هیچ اتهامی نمی زنم. هر دوی این سخنان دو پیلاتوس شبیه هم است اگر تفاوتی هم باشد تنها این است که پیلاتوس اول به قولش وفادار نمان و زمانی که به او گفته شد که علیه تو پیش قیصر شکایت خواهیم کرد ترسید و عمدن حضرت مسیح علیه سلام را به یهود خونخار تحویل داد. گرچه خودش و همسرش از این کار غمگین هم بودند چون هردوی آنها کاملا به حضرت مسیح علیه سلام اعتقاد داشتند اما با دیدن آشور و غوغای یهود بزدلی بر او مستولی شد. آری این هم درست است که او به طور پنهانی و مخفیانه بسیار سعی کرد که جان حضرت مسیح علیه سلام را از صلیب نجات دهد و او در سعی خود موفق هم شد اما متاسفانه بعد از این موفق شد که حضرت مسیح روی صلیب کشیده شدند و از شدت درد حالت قش به ایشان دست داد و گویی مرده بودند به هر حال به خاطر تلاش پیلاتوس رومی مسیح ابن مریم نجات یافتند لازم به ذکر است که از پیش دعای حضرت مسیح درباره این نجات مستجاب شده بود. رجوع کنید به عبرانیان فصل 5 آیه 7. مؤلف شریف در پاورقی می‌فرماید: حضرت مسیح به عنوان پیشگویی نیز گفته بودند که به شما هیچ نشانه‌ای به جز نشانه‌ی حضرت یونس نمایانده نمیشود بنابراین حضرت مسیح در قول خود به این امر اشاره کرده بودند که همانطور که یونس زنده به داخل شکم ماهی رفت و زنده برگشت من نیز زنده به قبر خواهم رفت و زنده از آن بیرون خواهم آمد پس این نشانه بجاز این که حضرت مسیح زنده از روی صلیب پایین کشیده می شدند و زنده در قبر گذاشته می شدند، چگونه تحقق می یافت و اینکه حضرت مسیح علیه سلام گفتند جز این هیچ نشانه دیگری ارائه داده نخواهد شد در این جمله ایشان آن افراد را رد می کنند که می‌گویند مسیح این نشانه را نیز نمایاند که زنده به آسمان صعود کرد ادامه مطلب پس از آن حضرت مسیح به سمت کشمیر رفتند و همانجا درگذشتند. و شما شنیده اید که قبرشان در سرنگیر در محله خانیار است همه اینها نتیجه تلاش پیلاتوس بود اما باز هم عمل کرده پیلاتوز آری از بزدلی نبود. اگر وی به پاس این سخن خود که من این شخص را گناهکار نمی حضرت مسیح را رها می کرد این کار برایش هیچ مشکل نبود. و وی اختیار و توانایی انجام این کار را داشت ولی او از پیگیری قیصر ترسید. اما پیلاتوس دوم از هجوم کشیشان نترسید در حالی که در اینجا نیز قیصر پادشاه بود. مترجم در پاورقی می نویسد. منظور از قیسره ملکه بریتانی است ادامه مطلب اما این قیصره از آن قیصر زمان حضرت مسیح بسیار بهتر بود و هیچ کسی نمی توانست برای تحت فشار گذاشتن قاضی و دور کردنش از انصاف و ادالت وی را از قیصره بترساند. به هر حال برای این مسیح نسبت به مسیح قبل همهمه و اعتراض زیادی پا شد و نقشه های فراوان کشیده شد. و علیه من تمام سرکردگان مخالفانم و رهبران ملت ها جمع شدند. اما پیلاتوس صداقت را برگزید و به حرفی که به من گفته بود که به تو اتهام قتل نخواهم زد پایبند ماند و مرا با کمال مردانگی و شجاعت و شفافیت تبرئه نمود. این پیلاتوس آنچه را که ادالت اقتضا کرد انجام داد و در او هیچ آمیزش بزدلی نبود. در همان روزی که من آزاد شدم دوزی از سپاه رستگاری نیز در دادگاه آورده شده بود. این اتفاق به این علت افتاد که به همراه مسیح اول نیز یک دوز به دادگاه آورده شده بود. اما دوزی که با مسیح دوم احزار شده بود مانند دزد اول به همراه مسیح اول به صلیب کشیده نشد و استخانهایش را هم نشکستند بلکه فقط برای سه ماه به زندان انداخته شد. حال دوباره به سخن من باز میگردیم و میگوییم این همه حقایق و معارف و نکات دقیق در سوره فاتحه جمع است که اگر همه آنها نوشته شود در یک کتاب هم نمیتواند به اتمام برسد فقط به همین دعای حکیمانه توجه کنید که در این سوره آمده یعنی اهدن استراد المستقیم این دعا چنان مفهوم کاملی در خود دارد که همین دعا کلید تمام اهداف دینی و دنیوی است ما از حقیقت هیچ چیزی نمی توانیم مطلع شویم و از فواید آن سود ببریم مگر اینکه برای به دست آوردن آن راه مستقیم را پیدا کنیم تمام امور سخت و ای که در دنیا وجود دارند چه مربوط به مسئولیت‌های سلطنت و وزارت باشد و چه در ارتباط با ارتش و جنگ و جدال باشد و چه درباره امور ظریف طبیعت و نجوم باشد و چه در مورد امور دارو و درمان طب باشد و چه در راستای زراعت و تجارت باشد در تمام این امور به دست آوردن موفقیت تا آن زمان مشکل و غیر ممکن است که راه مستقیمی برای آنها پیدا نکنیم که چگونه باید کار مطلوب را آغاز کرد هر انسان عاقلی در هنگام مشکلات همین امر را وظیفه خود میداند که شبانه روز برای مدتی طولانی به تفکر و تأمل بنشیند تا راهی برای حل مشکلات خود پیدا کند و برای هر صنعت و اختراع و ایجاد و هر کار ای لازم است که برای انجام آن راهی پیدا شود و برای رسیدن به اهداف دینی و دنیاوی دعای اصلی این است که برای انجام آن راهی پیدا شود هنگامی که برای انجام کاری مسیر درستی به آید، آن کار قطعا به فصل خدا انجام می شود قانون طبیعت و حکمت خداوند برای رسیدن به هر هدفی راهی قرار داده است. مثلا، امکان درمان بیماری به طور کامل وجود ندارد تا زمانی که راهی برای تشخیص بیماری و تجویز نسخه پیدا شود و قلب آدم بگوید که موفقیت وابسته به همین راه است. بلکه در دنیا تدارک هیچ کاری را نمی تواندید مگر اینکه برای انجام آن راهی پیدا شود. پس با این وصل، پیدا کردن راه برای رسیدن به هدف ضروری و فرض است و چنان که برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت، اول پیدا کردن راه ضروری است که پیموده شود همینطور برای دستیابی به دوستی خدا و مورد فضل و محبت قرار گرفتن او نیاز به راهی است به همین خاطر در ابتدای سوره دوم که بقره است خدای تعالی فرمود هدل للمتقین یعنی راه دستیابی به جایزه و انعام این است که ما بیان می کنیم. مؤلف در پاورقی می فرماید؟ در سوره فاتحه برای پیدا کردن راه راست دعا شده است و در سوره بعدی گویا این دعا مستجاب شده و راه راست نشان داده شده است. ادامه مطلب پس این دعا یعنی اهدنا سرات مستقیم دعایی جامع است که توجه انسان را به این ساعت معطوف می کند که در هنگام مشکلات دینی و دنیوی اولین چیزی که جستجوی آن وظیفه انسان است این است که برای حل آن به دنبال سرات مستقیم باشد. یعنی راهی صاف و راست و مستقیم را پیدا کند تا از طریق آن بتواند به آسانی به مقصود دست پیدا کند و قلبش اطمینان یابد و از شک و تردید نجات پیدا کند اما طبق توصیه انجیل کسی که به دنبال نان کفاس مسیر خداجویی را بر نخواهد گذید هدف او که فقط نان و غذاست وقتی آن را بیابد دیگر با خدا چه کار دارد همین دلیل است که مسیحیان از سرات مستقیم منحرف شدهاند و به عقیده شرماوری که به انسان خدا قرار دادن است گرفتار شدهاند. ما متوجه نمی‌شویم که مسیح ابن مریم نسبت به دیگران چه برتری داشت که به ذهن اینان خیال خداییش خطور کرد. معجزات اغلب پیامبران پیشین بیشتر از او بودند مثل موسا، الیاس و ایلیا نبی. و سوگن به ذاتی که جان من در دستان اوست که اگر مسیح ابن مریم در دوران من بود کارهایی که من می توانم انجام دهم وی هرگز نمی توانست انجام دهد ده و نشانه هایی که توسط من به ظهور می رسند وی هرگز نمی توانست نشان دهد ده معلف در پاورقی می فرماید برای تایید این گفته به زودی کتاب نزول مسیح را خواهید دید که در حال چاپ است. و ده جز آن به چاپ رسیده. این کتاب برای رد کتاب تنبور چشتیایی از پیرمهر علی گلروی نوشته شده است و در آن ثابت شده که آقای پیرمهر با دزدیدن مطالب محمد حسین متوفی چنان اشتباهات شرماوری را مرتکب شده که اکنون با آشکار شدن آنها زندگی او تلخ خواهد شد. آن بدبخت که طبق پیشگویی ما در اعجاز مسیح وفات یافت و این بدبخت دوم با درست کردن کتاب ناحق نشانه این پیشگویی این نیموهین من ارهد اهانتک قرار گرفت فتب روی اول الابصار ادامه مطلب کارهایی که من میتوانم انجام دهم وی هرگز نمی توانست انجام دهد و نشانه هایی که توسط من به ظهور میرسند وی هرگز نمی توانست نشان دهد و فضل خدا را بیشتر از خود بر من میدید پس وقتی که من این چنین هستم آنگاه تصور کنید که آن پیامبر پاکی که من غلام او هستم چه مقام و مرتبه ای دارد ذالک فضل اللهی یاتیه من یشاء در اینجا جای هیچ حسادت و غبطهی وجود ندارد. خدا هرچه بخواهد میتواند انجام دهد. کسی که با اراده او مخالفت کند نه تنها در رسیدن به هدفش ناموفق و ناکام خواهد ماند بلکه پس از مردن راه جهنم را پیش خواهد گرفت. حلاک شدند کسانی که مخلوق آجز را خدا قرار دادند. نابود شدند کسانی که پیامری برگزیده را قبول نکردند. تبریک به کسی که مرا شناخت من از بین تمامی راه‌های خدا آخرین راه هستم و از بین تمامی نورهای خدا آخرین نور هستم بدبخت از کسی که مرا رها کند چون بدون من همه چیز تاریک است دومین وسیله ای که به مسلمانان برای هدایت و راهنمایی داده شده سنت است یعنی کارهای عملی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که ایشان برای شرح احکام قرآن شریف انجام دادند مثلا در قرآن کریم ظاهرا تعداد رکت های نماز های پنجگانه مشخص نیست که صبح چه تعداد است و در نمازهای دیگر چه تعداد. اما سنت همه آنها را بازگو می کند. مبادا اشتباه تصور شود که سنت و حدیث یک چیز است. اینها یکی نیستند چرا که احادیث پس از 100-150 سال جمعآوری شدند، اما سنت در همزمان با قرآن وجود داشت. بر مسلمین پس از قرآن شریف سنت لطف و منت ندارد. وظیفه خدا و پیامبر فقط این دو امر بود. که با نازل کردن قرآن مخلوقات را به وسیله سخنان خود از خواسته های خیش آگاه سازد و این وظیفه قانون خدا بود و وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که با عمل کردن به کلام خدا آن را نشان دهد و به خوبی تفهیم نماید پس حضرت پیامر اکرام صلی الله علیه و امور گفتنی را در عمل ارائه دادند و با سنت خود یعنی با عمل خیش معضلات و مشکلات و مسایل را حل نمودند این سخن درستی نیست که بگوییم حل این مسایل منوط به حدیث بود چرا که قبل از وجود حدیث اسلام روی زمین استوار شده بود معلف شریف در پاورقی میفرماید اهل حدیث هم فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم قول پیامبر صلی الله را حدیث می‌نامند ما به اصطلاح آنها کاری نداریم در واقع سنت جداست که برای اشاعه آن خود حضرت پیامبر احتمال ورزیدند و حدیث مقوله جداست که بعدها جماویری شده است ادامه مطلب آیا؟ تا آن زمان که احادیس جمعآوری نشده بود، مردم نماز, نماز نمی‌خواندند، یا زکات پرداخت نمی‌کردند، یا به هشت یا از حلال و حرام بیخبر بودند؟ آری، سومین وسیله هدایت حدیث است. چون حدیث بسیاری از امور تاریخ اسلام و اخلاق و فقه را به طور مفصل بیان می کند. و این نیز فایده بزرگ حدیث است که حدیث خادم قرآن و سنت است. به کسانی که ادب قرآن داده نشده است در اینجا حدیث را داور و قاضی بر قرآن شریف قرار می دهند که یهود نسبت به احادیث گفتند اما ما حدیث را خادم قرآن و خادم سنت قرار می دهیم و معلوم است که شکوه و عباحت سرور با داشتن خادمان بیشتر افزایش میابند قرآن کلام خداست و سنت فعل پیامبر خدا و حدیث شاهدی برای تایید سنت است. نعوذ بالله گفتن این حرف نادرست است که حدیث بر قرآن قاضی است. اگر هم چیزی بر قرآن قاضی و داور باشد، آن خود قرآن است. حدیث که در جایگاه زن و گمان قرار دارد و آن هرگز نمیتواند بر قرآن قاضی باشد. آن فقط به عنوان مدرک تایید کننده است. تمام کار اصلی را قرآن و سنت انجام دادند. و حدیث تنها شاهدی برای تایید است. حدیث چگونه می تواند بر قرآن قاضی باشد؟ قرآن و سنت از زمانی دارند هدایت می کنند که نامی از این قاضی مستوعی وجود نداشت. این سخن را نزنید که حدیث بر قرآن قاضی است بلکه بگویید حدیث شاهدی برای قرآن و سنت است. البته سنت چیزی است که هدف قرآن را روشن و آشکار می کند و منظور از سنت راهی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اصحاب را در آن قرار داد. سنت نام سخنانی نیست که 150 سال بعد در کتاب ها نوشته شدند، بلکه نام این سخنان حدیث است و سنت نام نمونه عملی است که از ابتدا مسلمانان مؤمن به شکل عمل انجام میدادند و هزاران مسلمان به پیروی از آن خوانده شدند. آری اگرچه بیشتر احادیث بر مرتبه زن و گمان است اما به شرط عدم تعارض و تضاد با قرآن و سنت لایق اختیار و تمسک است و تایید کننده ی قرآن و سنت است و بسیاری از مسائل اسلامی در آن ذخیره شده است پس ندانستان قدر حدیث گوی قطع کردن عضفی از اسلام است البته اگر حدیثی قرآن و سنت را نقص کند یا حدیثی را نقص کند که با قرآن همخانی دارد و یا مثلا حدیثی باشد که مخالف صحیب و باشد، آن حدیث قابل قبول نیست. چرا که با پذیرفتنش مجبور به رد کردن قرآن و احادیث موافق با قرآن می شوید. و میدانیم هیچ انسان پرهیزگاری جرأت نخواهد کرد که به حدیث اعتقاد داشته باشد که با قرآن تطابق ندارد. به هر حال قدر احادیث را بدانید و از آن بهره ببرید چون آنها منصوب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و تا زمانی که قرآن و سنت آنها را نعفی نکنند شما هم آنها را تکسیب نکنید. بلکه لازم است به احادیث نبوی چنان عمل کنید که تا زمانی که در تعیید کاری حدیثی نداشته باشید هیچ حرکت و سکون و فعل یا ترک فعل نکنید. اما اگر حدیثی باشد که به طور سریع با گفتارهای قرآن شریف مخالف باشد در آن صورت اول سعی کنید برای تطبیق آن با قرآن راهی بیاندیشید. شاید آن تعارض به خاطر برداشت اشتباه خودتان باشد ولی اگر آن تضاد برطرف نشود آن حدیث را دور بیاندازید زیرا آن مال حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست البته اگر حدیثی ضعیف باشد و با قرآن مطابقت داشته باشد آن حدیث را بپذیرید چون قرآن مصدق آن است و اگر حدیثی مبتنی بر پیشگویی است اما در نظر محدثین آن ضعیف شمرده شود ولی اگر آن پیشگویی در زندگی تان یا قبل از شما تحقق یافته است آن حدیث را درست و راست بدانید و این چنین محدثین و راویان را مخطی و دروغگو پنداری که این حدیث را ضعیف و موضوع قرار داده اند. صدها این چنین احادیث داریم که دارای پیشگویی است و محدثین بیشتر آنها را مجروح یا موضوع یا ضعیف قرار داده اند. اما اگر یکی از پیشگویی‌های حدیثی محقق شود و شما بگویید که چون این حدیث ضعیف است یا یکی از راویانش متدین نبوده لذا آن را قبول نداریم. این امر دال بر بی‌ شماست. چرا که دارید حدیثی را رد می کنید که خداوند متعال زهی بودنش را آشکار نموده است. کمی بیاندیشید اگر هزار حدیث این چنین باشد و پیشگویی های آنها به وقوب پیوندد اما محدثین آنها را احادیث ضعیف قرار داده باشند. آنگاه آیا می توانید با ضعیف قرار دادن این قبیل احادیث هزار نشانه حقانیت اسلام را از بین ببرید؟ اگر این کار را کنید. در این صورت شما دشمن اسلام تلقی خواهید شد در حالی که خداوند متعال میفرماید ولا یظهر علی غیبهی، احد الا من ارتضى من رسول سوره جن آیات 27 و 28 بنابراین پیشگویی حقیقی را بجز به پیامبر حقیقی به هیچ کس دیگر نمی توان نسبت داد پس آیا در این چنین مواقع گفتن این حرف که محدثی به اشتباه این حدیث را ضعیف خانده درستتر است یا گفتن این مناسبتر است که خداوند به اشتباه این حدیث دروغین را به واقعیت تبدیل کرده است و اگر حدیثی در درجه ضعیفی هم باشد اما برخلاف قرآن و سنت و احادیثی که مطابق با قرآن است نباشد به آن عمل کنید به احادیث باید بسیار محتاطانه عمل کرد چرا که بسیاری از آنها موضوع و خودساخته نیز هستند و موجب ایجاد فتنه در اسلام گشتهاند. هر فرقه این از خود احادیسی مطابق با عقایدش دارد تا این حد که در ارتباط با نماز هم که فریزه قطعی و متواتر است به سبب اختلاف احادیث اختلافات زیادی به وجود آمده است کسی آمین را با صدای بلند می گوید و کسی زیر لب می خاند. کسی پشت سر امام سوره فاتحه میخواند و دیگری آن را موجب اشکال در نماز میداند. کسی دست به سینه می بندد و کسی بر ناف و دلیل اصلی اختلافات احادیث هستند. كل حزب به لديهم فرحون. سوره مؤمنون آیه چهار ترجمه مترجم. هر گروهی به آنچه که نزد خود دارند خوشنود و خوشحالند. ادامه مطلب و یعنی سنت فقط یک روش را گفته بود اما سپس دخالت روایات این روش را تغییر داد همینطور برداشت اشتباه از احادیث بسیاری از مردم را نابود کرد شیعیان نیز از همین راه حلاک شدند آنان اگر قرآن را داور خود قرار میدادند، تنها یک سوره، سوره نور به تنهایی میتوانست به آنها نور ببخشد اما احادیث آنها را حلاک کردند همینطور در زمان حضرت مسیح آن یهود که اهل حدیث خوانده می هلاک گشتند معلف شریف در پاورقی میفرماید در انجیل به شدت با عقایدی که در احادیث و روایات تالمود آمده مخالفت شده است این احادیث سینه به سینه تا حضرت موسی می رسد و گفته میشد که اینها الهامات حضرت موساست سرانجام وضع این گونه شد که آنان تورات را رها کردند و تمام وقت فقط احادیث را می‌خواندند. در بعضی از امور تالمود با تورات اختلاف دارد. در این موارد نیز یهود به تالمود عمل می‌کردند. تالمود تعلیف شده توسط یوسف بارکلی، چاپ لندن، 1878 میلادی. مطلب. مدتی بود که آنها تورات را کنار گذاشته بودند. و چنان که در گذشته این عقیده داشتند که حدیث بر تالمود قاضی و داور است تا به امروز نیز این عقیده را دارند نزدشان بسیاری از احادیث مبنی بر این وجود داشت که تا زمانی که ایلیا با جسم انصریش نازل نشود مسیح معود نخواهد آمد این احادیث به شدت موجب لغزششان گشت و مردم با تکیه به آنها نتوانستند این تفسیر و تشریح حضرت مسیح را قبول کنند که منظور از الیاس یوحنا یعنی یحیی نبیست و وی با خلق و خوی الیاس آمده است و زل و سایه اوست پس تمام لغزش یهود به سبب احادیث بود که سرانجام منجر به ایمانیشان شد این نیز ممکن بود که آن مردم در معنی کردن احادیث هم اشتباه بکنند یا در احادیث بعضی کلمات انسانی هم راه یافته باشند. خلاصه شاید مسلمانان از این واقع خبر نداشته باشند که از یهود اهل حدیث منکر حضرت مسیح بودند. اینان علیه حضرت مسیح آشو و غوغا به پا کردند و فتفای کف نوشتند و ایشان را کافر قرار دادند و گفتند که این شخص کتابهای خدا را قبول ندارند. خداوند خبر بازگشت مجدد الیاس را داده است و این شخص هایی برای این پیشگویی میآورد و بدون هیچ خری ای این اخبار را به سمتی دیگر میکشد و میبرد. مؤلف شریف در پاورقی می‌فرماید زمانی که فتوای کفر علیه حضرت عیسی علیه سلام نوشته شد پولس نیز در جمع تکفیرکنندگان بود وی آن کسی است که بعدها خود را با نام پیامبر مسیح مشهور کرد این شخص در حیات حضرت مسیح از دشمنان سرسخت ایشان بود تمام اناجیل که به نام حضرت مسیح نوشته شده است حتی در یکی از آنها هم این پیشگویی نشده که پولوس پس از من توبه کرده و پیامبر من خواهد شد ما هیچ نیازی نمی بینیم که در مورد کردار گزشتش مطلبی بنویسیم چرا که مسیحیان از آن به خوبی واقف هستند. اما افسوس او همان شخصی است که حضرت مسیح مادی که در آن کشور بودند به ایشان بسیار آزار و اذیت رساند و وقتی که ایشان از صلیب نجات یافتند و به سمت کشمیر رفتند با یک خواب دروغین خود را از هواریون خواند و عقیده تسلیس را افترا نمود و برای مسیحیان خوک را که از روی تورات حرام ابدی بود حلال قرار داد و مشروب خوری را تعمیم داد و در عقاید انجیل تسلیس را وارد کرد تا با این تمام بدعتها بود پرستان یونانی را خشنود سازد ادامه مطلب آنها بر حضرت مسیح نه تنها کافر بلکه فاسق و ملحد نیز نام نهادند و گفتند اگر این شخص صادق است پس دین موسوی باطل است آن دوران برای یهود زمان فیجعوج بود و احادیس دروخین باعث فریبشان گشت. خلاصه به هنگام خواندن احادیث باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در گذشته قومی با قاضی قرار دادن احادیث بر تورات به این حال دچار شدند که پیامبر صادق را کافر و دجال خواندند و منکر او شدند. برای مسلمین کتاب صحیح بخاری بسیار مفید و مبارک است. این همان کتابی است که در آن به وضوح نوشته شده است که حضرت عیسی علیه السلام همین طور صحیح مسلم و کتاب حدیث دیگر دارای یک گنج بسیاری از معارف و مسایل است. عمل به آنها با این احتیاط واجب است که مبادا مضمون حدیث این گونه باشد که با قرآن شریف و سنت و احادیثی که مطابق قرآن از تضاد داشته باشد. ای بندگان طالب خدا، گوشهایتان را باز کنید و بشنوید که هیچ چیزی مثل یقین نیست. همانا یقین است که انسان را از گناه باز می‌دارد. یقین است که قدرت و توانایی انجام نیکی می‌دهد. یقین است که انسانی را عاشق صادق خدا می‌سازد. آیا می‌توانید گناه را بدون یقین رها کنید؟ آیا می‌توانید از احساسات نفسانی بدون تجلی قطعی خدا دور شوید؟ آیا می‌توانید بدون یقین و اطمینان به اطمینان قلبی دست یابید؟ آیا می‌توانید بدون یقین تحول حقیقی را ایجاد کنید؟ آیا می توانید بدون یقین شادی و خوشحالی راستین را تحصیل کنید؟ آیا کفاره یا فدیهای در زیر آسمان وجود دارد که موجب ترک گناهانتان شود؟ آیا پسر مریم، ایسا در جایگاهی هست که خون مصنوعی و جعلی او شما را از گناهان برهاند؟ ای مسیحیان، چنین دروغی را نگویید که به خاطر آن زمین متلاشی گردن؟ ایسا برای نجات خود نیز محتاج یقین بود. و او یقین داشت و نجات یافت. جای تاسف دارد برای مسیحیانی که مردم را فریب می‌دهند و می‌گویند که با خون عیسی از گناهان نجات یافته ایم در حالی که آنان سر تا پا غرق در گناهانند و نمی‌دانند خدایشان کیست و بلکه زندگی را دارند با غفلت سپری می‌کنند. مستی مشروب ذهنشان را فرا گرفته است و از آن مستی پای که از آسمان می‌آید، ناآگاهند. و آنان از آن زندگی که در کنار خدا می باشد و از نتایج پای آن بی بند. پس به خاطر بسپارید که بدون یقین نمی توانید از زندگی تاریک بیرون بیایید و نه روح القدس آیدتان خواهد شد سعادتمندند کسانی که صاحب یقینند چرا که تنها اینها خدا را خواهند دید. سعادتمندند آنانی که از شک و تردیدها نجات یافتند زیرا تنها اینها از گناه نجات خواهند یافت سعادت من مندید شما اگر به شما ثروت یقین داده شود چرا که پس از آن گناهانتان خاتمه خواهند یافت گناه یقین نمی توانند در کنار هم باشند آیا می توانید دستتان را وارد سوراخی کنید که ماری زهراگین را در آن می بینید؟ آیا می توانید جایی بیستید که در آنجا از کوه آتش فشانی سنگ میبارد یا سائقه میزند؟ یا محل حمله شیر درنده ای است یا جایی است که تاون تا مهلکی آنجا در حال نابود کردن نسل انسان است اگر به خدا همانطوری یقین دارید که مار یا سائقه یا شیر یا تاون تا دارید در آن صورت ممکن نیست از او نافرمانی کرده و راه کیفرش را برگزینید یا رابطه صدق و صفا را با او قطع کنید ای مردم که به نیکی و درستکاری خوانده شده اید یقینا بدانید که ایجاد کششی به سوی خداوند و پاکی از لکه ی زشت گناه تنها آنگاه صورت میگیرد گیرد که دل‌هایتان مملو و از یقین شود شاید بگویید که ما یقین داریم اما به خاطر بسپارید که در این مورد فریب خورده اید شما هرگز به یقین نرسیده اید چرا که مستلزم آن را در دست ندارید و از گناه باز نمی آید. گامی را که باید بردارید بر نمیدارید. طوری که باید بترسید نمی ترسید خودتان تصور کنید که وقتی که کسی یقین دارد که در فلان سوراخ ماری است آیا احتمال این وجود دارد که وی دست خود را داخل آن سوراخ کند و کسی که یقین دارد در غذایش یش سم هست آیا وی می تواند آن غذا را بخورد و کسی که یقین دارد در فلان جنگل هزار شیر درنده وجود دارد آیا وی می تواند با بی احتیاطی و غفلت قدم در آن جنگل بگذارد پس اگر به خدا و روز حساب یقین داری در آن صورت دست و پا و گوش و چشمهایتان چگونه می‌توانند بر انجام گناهی شجاعت به خرج دهند گناه هرگز نمی‌تواند بر یقین غلبه پیدا کند زمانی که دارید آتشی از بین برنده و سوزاننده را جلوی چشم خود میبینید، آنگاه چطور می‌توانید خود را به درون آن آتش بیاندازید؟ دیوارهای یقین تا آسمان کشیده شده شده‌اند شیطان نمی‌تواند از آن دیوارها عبور کند هر کسی که پاک گشت توسط یقین پاک شد یقین توانایی تحمل ها را می دهد و تا این حد توان تحمل را بارا می برد که پادشاهی را از تاج و تختش جدا کرده و به او جامعه فقیری می پوشاند یقین هر غم و هم را آسان می کند یقین خدا را نشان می دهد هر کفارهی دروغین است و هر فدیهی باطل است چرا که هر پاکیزگی از راه یقین به دست می آید چیزی که از گناهان رهایی میبخشد و به خدا میرساند و در صدق و پایداری از فرشتگان نیز پیشی میبخشد یقین است. هر مذهبی که لوازم رسیدن به یقین را ارزه نکند دروغین است. هر مذهبی که با وسایل یقینی نتواند خدا را نشان دهد دروغین است. هر مذهبی که در خود چیزی ندارد به جز نسخه های قدیمی دروغین است. خدا همانطوری است که قبلا بوده، همان قدرت هایی را دارد که قبلا داشته. و چنانکه او قبلا بر به نمایش گذاشتن قدرت خود قادر بوده اکنون نیز قادر است پس چرا تنها به قصه های قدیمی پسنده می کنید؟ آن مذهبی نابود شده است که معجزه آن تنها قصه های قدیمی است و پیشگویی هایش فقط داستان های قدیمی است و آن جماعت نابود شده است که بر آن خداوند متعال نازل نشود و توسط یقین به دست خود خدا پاک و صاف نگردند همانطوری که انسان با دیدن اسباب لذتهای نفت به سمت آنها کشیده می شود، همینطور وقتی که انسان لذت روحانی را از طریق یقین کسب می کند، به خدا کشیده می شود. و حسن و زیبایی او چنان مستش می که همه چیزهای دیگر کاملا از چشمش میافتند و به درد نخور به نظر می رسند و آنگاه وی از گناهان رهایی می آبند. چرا که دیگر وی به طور قطعی و یقینی به هستی خدا و جذا و سزایش می‌شود. ریشه هر بیباکی ناآگاهی است فردی که از معرفت یقینی خدا سهمی میبرد نمیتواند بیباک بماند اگر صاحب خانه بداند که سیل شدیدی به سمت خانهاش در راه است یا اطراف خانهاش را آتش گرفته و آن بلا فاصله بسیار نزدیک رسیده است وی نمیتواند در خانه باقی بماند پس شما چگونه با داشتن ادعای ایمان و یقین به روز جزا میتوانید حالات خطرناک خود را ادامه دهید پس چشمانتان را باز کنید و آن قانون خدا را بنگرید که در تمام جهان دایر است. مثل موش نباشید که به سوی زیر زمین حرکت می کند بلکه کبوتر بلند پرواز باشید که فضای آسمان را برای خود دوست دارد. شما پس از بیعت توبه بال به سمت گناهان بر نگردید و به سان مار نباشید که با وجود پوست اندازی مار باقی می ماند. مرگ را همواره مد نظر داشته باشید که آن هر روز به شما نزدیکتر می شود و شما از آن بیخبرید تلاش کنید که پاک شوید چرا که انسان پاک را آنگاه پیدا می کنید که در خود پاک باشید اما شما چگونه می توانید این نعمت را به آورید؟ پاسخ این خود خداوند متعال در قرآن شریف آنجا داده است که می فرماید بستعین و بسبری و سلن. سوره بقره آیه چهل و شش یعنی با نماز و صبر از خدا کمک بخواهید. نماز چیست؟ آن دعایی است که با تسبیح و تحمید و تقدیس و استغفار و فرستادن صلوات بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تواضع و فروتنی خوانده شود. بنابراین زمانی که نماز بخوانید در دعاهای خود مثل انسانهای بیخبر فقط پایبند عبارتهای عربی نمانید. چرا که نماز و استخبارشان فقط از روی رسم و عادت است که هیچ حقیقتی را به همراه ندارد اما هنگامی که شما نماز بخوانید، علاوه بر قرآن شریف که کلام خداست و به علاوه بعضی دعاهای ماسوره که کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است مابقی تمام دعاهای خود را به زبان خود در کلمات متواضعانه بخوانید تا دلهایتان تحت تاثیر این تواضع و فروتنی قرار گیرد نماز پنجگانه چیست؟ آنها تصویر حالات مختلف شماند در زندگی تان 5 تغییر و تحول به طور الزامی به هنگام دوچار شدن به مصیبت روی میدهد فطر تان گونه ساخته شده است که پدید آمدن این حالات بر شما ضروری است حالت اول زمانی دست می که به شما اطلاع می دهند که نزدیک از دچار مصیبتی شوید فلمس دادگاه برایتان حکم احزاری صادر کرده است و این اولین حالتی است که باعث خلل شادی و سرورتان می شود. پس این حالت شبیه زمان شروع انحطاط و زوال است چرا که در آن شادی و خوشحالی تان رو به زوال است در مقابل این حالت نماز ظهر گذاشته شده است که زمان خواندن آن از زوال آفتاب آغاز می شود. دو تغییر دوم آن بر شما وارد می شود که به محل آن بلا و مصیبت بسیار نزدیک می شود. به طور مثال طبق احساریه دستگیر شده و به نصف می شود. این آن زمانی است که در آن از ترس خون در بدنتان خشک می شود و نور اطمینان خاطرتان از بین می رود این وضعیتتان مشابه زمانی است که نور آفتاب کم می شود و می توانید آن را نگاه کنید و به طور سریع دیده می شود که زمان غروبش نزدیک است در مقابل این وضعیت روحانی نماز عصر قرار داده شده است. 3 تغییر سوم زمانی بر شما مسولی می شود که امید رهایی از مصیبت کاملا قطع می شود. به طور مثال زمانی که علیه شما حکم جرم نوشته می شود و گواهان مخالف شهادت خود را می دهند این آن زمانی است که در آن شما هوش و حواس خود را از دست می دهید و خودتان را زندانی تصور می کنید. این حالت مشابه آن زمانی است که آفتاب غروب می کند و تمام امیدهای روشنایی روز از بین می رون. در مقابل این حالت روحی نماز مغرب قرار داده شده است چهار حالت چهارم زمانی به شما دست می دهد که گرفتار بلا می شوید و تاریکی شدید از شما را احاطه می کند مثلا زمانی که پس از تکمیل پرونده جنایی و شهادت شاهدان حکم کیفر دادگاه صادر می شود و شما را برای زندانی کردن به پلیس تحویل می دهند این حالت شبیه آن زمانی است که شب فرا رسد و تاریکی همه جا را احاطه می کند. در مقابل این حالت روحی نماز عشا فرض شده است. 5. سپس بعد از مدتی که آن را در تاریکی این مصیبت به سر میبرید، سرانجام رحم خداوند متعال میجوشد و شما را از آن تاریکی نجات میدهد به طور مثال، چنان که پس از تاریکی بالاخره صبح میشود، سپس باز همان نور و روشنایی روز با درخشش خود ظاهر میشود در مقابل این حالت روحی، نماز فجر قرار داده شده است بنابراین خداوند با توجه به پنج حالت و تغییر فطریتان پنج نماز را برایتان فرض نموده است و از این می توانید متوجه شوید که خداوند نمازها را به خصوص برای فایده خود شما فرض قرار داده است پس اگر می خواهید همواره از بلاها موسون بمانید در آن صورت نمازهای پنجگانه را ترک نکنید زیرا آنها زل و سایه تغییرات درونی و روحانیتان هستند نماز در ما نیست برای بلاهای آینده شما نمیدانید روز جدید چه غذا و قدری را برایتان تان می آورد پس قبل از اینکه روز جدید تلو کند در بارگاه الهی با گریه و زاری دعا کنید که روز خیر و برکت برایتان تان تلو کند